بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا رسول الله وآلها الطيبين الطاهرين المعصومين ذات دائم شادای مجمعين الله من آخره وجميع المشترعين رحمنا ورحمتك يا رحمن الرحيم عرض خدمات هايي مي که مرغوم شيخ الله نست در مواردی که جمع بین تطفیف در ربا باشه ظاهر عبارتی ایشان که در موارد تطفیف معامل صحیحه و با باید جوران بکنه و در موارد باید در موارد ربا معامله باطله با جوران نخص هم درست نمیشه مثلا در مورد تطفیف اگر گفت این ده کلول به ده هزار و میدونه که هشت کلول بعد دو کیلو ده معامله تمام مشکل نداره اما در موارد ربا اگر گفت این کونزه چیلو رو خروفتن به ده کلو گندو و بعد اون پنج کلو دیگه هم داد که شد هر دو کونزه رو کونزه باز هم معامل روسته میشه خود در مورد ربا اگر معامله رببی واقع شد با جر نفس باز هم معامله صحیح نمیشه معامله فاسده اینطور نیست که معامل صحیح بشه باز هم با جبر نقص خیلی نمیشیم. به خلاف باز تسیف با جبر نقص معامله سنگی میشه. یه فیلی بزگم روز هم به درزاتون هم هشت کیلو بشیده. بعد دو کلو اضافه می کنم درست. اینو این رو هر دو مسئله رو از کردیم. دو دارگانه برمسید می کنیم. فعلا درجانی ایست که بین هر دو جمع بکنه. هم تسیف باشه هم رگاه باشه. مثلا اگه این 10 کیلو گندم رو بهتون فروختن به 10 کیلو گندم ببینید 10 کیلو به در، به قول برابر ربانی ربایی خودش میدونه گندم 8 کیلوست. پس در حقیقت 8 کیلو رو فروخته به 10 کیلو. به لحاظ 8 کیلو به ده کیلو ربان میشه. به لحاظ این که وزن رو کم کرده از 10 کیلو 2 کیلو کم کرده فریب میشه. جمع بین اینه تطفیف و ربا پس یه پیش هرگی هست در کلماتش شهر مذرد با پیش اینه که در مورد تطفیف معامله درسته جبر نقص میشه در مورد ربا معامله من اله اصل خواسته با جبر نقص هم درست نمیشی در جایی که جمع بشه که مثلا من در روز گذشته یه مقدار مراد من واضح بود. اینشالا آهان استباره هستم. خود من تحبیراتم عنوان معنوان رو یک کمی بد به کار گردیم. من دو مرتبه توضیف کدم مراد ما از عنوان عنوان مشیره. من معنوان واقعه هم برای اینکه تنگیم نشه عنوان و واقع رو مفرحیم. ما یک عنوان داریم مثلا فرصم در غیر این داری بحثم داریم اخصاص این داریم. میگه پشت سر این امام جما یک عنوان داره عنوان این امام جماعت یک واقع داره یعنی عنوان امام جماعتی که زید یک واقع داره که او امره زید نیست خوشستان آقا که زیده زید هم میسه امره اما امر هم عادله. پس اینجا تحلیل بکنه عنوان ما روشن معنونده این یه مطلب این درستی من فقط در تقریب شید نو بذارم یک نکته دیگر که ما در باب اعتبارات چه اعتبارات قانونی مثل سله وله هستن اینا اعتبارات قانونی اعتبارات قانونی اموری هستن که از مبدع قرلت و مبدع اعتبار مبدعی که به یعنی اعتبار به اصلاح مکلل شهر همه هر, هر اعباده که دیم بگیم این قرار داده میشه و این جن واقعی نیست این تو به اعتبار پیدا میشه واقعا هیچ شکال نمیکنه چه اعتبارات باطنی که عسکری گفت سنده نه شاره عوض میشه نه مکلف عوض میشه هیچ تغییر خارجی نیست فقط در ذهن او وجود پیدا کرده و این وجود وجود اعتباری است و عسکری گاهی اوماد از این اعتباریات تغییر به انتزائیات میکنه دقیق نیست از کلمات و اصولین آمده بعض از بزرگانه معهول آمده انصافا بیاییم اعتبار رو از انتظار جدا بکنیم که من اون این اصفادم های خوی ادهیم بر این باورم و این درسته انتظار بگیم که منشه انتظار وجود داره نه در واقع در هر ویعایی که میخواییم فرص بکنیم لازم نیزن لگه چیه اضافه نمیشه حتی در وعای اعتبار هم اضافه نمیشه وجود پیدا نمیکنه. مثل فوقیت سخت این سخت مثلت به شما این فوقیت هیچ کاری نمی کنه. سخت سخت به شما همی کنید هیچی هم اضافه نمی میاد دو چیز رو در نظر میگیره از این دو چیز انتظار میکنه فوقیت گاهی اوقات همین طوره هیچی در واقع و در تکلین اضافه نمیشه اما تو وعای اعتبار اضافه میشه این حسنشه بذاریم انوی اعتباری مثلا گفت در را باز کن نه به من چیزی اضافه شد نه به معمول چیزی چیز اضافه نه تو هیچ هیچی عوض نشد در ذمه او او فتخلباب را قرار دادم تو وعای اعتبار و چون وعای وعا اعتبار وعای خارجی خوب بنه اجازه بفرمایید. اینا توضیحاتی است که اگر آرون خواستن در این مقاله ششم به در ادراکات اعتباری مربوط به آیه توی اصول فلسفه و روش رادیک اونجا متعرض شدن خوب بحثی کردن به نظر ما نقص داره به درد کارهای اصولی خیلی نمیخوره با تکمیل بشه وقتیشان امور اعتباری چون واقعیت ندارند چون واقعی نیستند و اونها به اعتباره تماما دائم مدار اون مقدار اعتبار هم و در اعتباری ها چون واقعی نداره قبلاً باید یک لحاظی بچه یک دو باید اثر رو در نظر بگیره چون اگر اثر در نظر نگیره باید اعتبار لحظه حسن بگیرین اعتبارات باید در یا احتمال داره بعضی نبشم اعتبارات قانونی احتمالاً اصلش اعتبارات ادبی بوده احتمالاً. مثلا پرسومی بیدیم که مثلا در اصل لغت منکه باید مرده حیوانی که خودش مرده و بو کرده و گن کرده و این اسمش منکه هست حالا پرسومی پدر به پسرش گفته مثلا این گوستن باید نکش مثال پسر وقت کش حالا اون گوستن خیلی ساله تا یه بشن گوشت و خوبیش مشکل نداره پدره میگه این نیترس این مردار مردار نیست میگه تو چون مخالفت من کردی؟ چون خلاف هم من انجام دادی؟ این حیوان من کشتی اینو من مردار میبینم ازدهی در تحلیل قانون حرفشون اینه که تنزیلات قانونی و اعتبارات قانونی ریشی لر اعتبارات عذبی داره یعنی چی اعتبارات ادبی. مثل که این زیدان اصدون تو اعتبار عددیست؟ یه نوع تنزیله یه نوع اعتباره حقیقت اعتبار در همه جا یک نواخته اعتبار یا تنزیل اعتاق و حد شیل غیره این حقیقت تنزیله وقتی که این زیدان اصدون که نماز زید رو لغات انسانیت در اوزید لغات اصدویت بشتوشوندی این با اون تن مجاز عقلی که تکاکی قائله از او یه جهتی فرق داره شاید نتیجه با او قریب باشه اما فرق داره من باز اون بحثی میخواد میتونی جاش اینجا نیست نمیخواد این بحث بشه پس در اعتبارات لحاظ میخواد اثر میخواد ازش اثر اما اینها کافی نیست تا ابراز نشه اعتبار داشته میشه چرا چون در امور متأثر ابراز بشه یا نشه هست در واقع هست شما طب داشته باشین یا نسته باشین شما گرست نه باشین یا سی باشین واقعه این فرصه مثلا دیید که این آهنی که اینجا هست من بگانم یا دا دا ندارم دام باشه دامه دستم بذارم میشوندونه بخاط بگارم بخاط ندارم امور متعصل طبیعتش اینه اینها با افق نفس من رابطه ای ندارن لذا ادراکات ما نسبت به اونها اصطلاحا ادراکات انفعالی به شخصه میشه اما در اعتبار ما حرف میکنیم، ما ایجاز میکنیم. لذا ادراکات ما نسبت بناه ادرافات ادگاهی هستند تبیهرشون اینه. ما زیگ رو اصد قرار نیم. زیگر اصد نیم. میگم در اعتبارات قانونی هم همینطوره. اول اعتبارات عذبی بود. مثل مثال قرفی خیلی واضعی که خدمتون هرز کردن. پسرش نیگه این بود سنده کشره میکشه پدره میگه تو مخالفت من کردی این مردار پدکوتی مردار نیستی بوی گنگ نمی میده متلاشی که نیست این یک تنویر ادبی میکنه این مثل زیدان عثدونه این بعد ها در طی گذشته و تا هی اضافه میشه شکل قانونی پیدا میکنه میگه اگر او بقدر نبود مردار اگر با آهن نبود مردار اگر دستور نگوفتیم او به صورت شکل قانونی خودش رو میرسه به این شکل قانونی یه اقضی معتقده بیران همه که واقعیت تاریخیش همینطور باشه هست هم؟ اجمالا زمان حرف کنید اما تحققا احتیاج به تحقیل بیشتر تاریخی داره که این رفت و ایجاد پس ما یک سنف مطالبی داریم که وجود دارند در وعاه اعتبار یعنی اونها با افاق نقص ما مستقیم رابطه دارند. مثل زوجیت ما یه زوجیت تکریری داریم و خیلق نمونی کنشه این زوجیه نسمه یه زوجیت که اعتباط چون برای اعتباط همون مثالی که من از زن وقتی که ایجاب رو گفت مرد که در رو گفت نه به زن چیزی ایجاب رو به مرد لبز دیگه انما یو حد رو کرا یو حد لیکن این زوجیت در رعای اعتبار خیدان میشه و این نقطه هم خیلی نقطه مهمیه بسیار نقطه مهمیه خوب دقت بکنید چون امور اعتباری خودش واقعی نیستن باید ببینید در این لحاظ چی رو لحاظ کرده مثلا وقتی زن میگه زن بشتک نفسی به محر المقضار و, و کذا آیا معاوضه رو لحاظ کرده؟ که من خودم رو در مقابل این من قرار دادم من از خبر مسئله معاوضه که نکاح معاوضه هست این در فکر اهل سنت آمده اونم نه اونم که روایت ام رسول الله دارن چون خیلی دیم داریشین که شکری جواهر با نه این که روایت دارن با با استناد کردن به ظاهر آیه مبارکه به این و رهد از نفس حال نبی و پھر چون رہرد یعنی بلا منع پس اگر منع باشه مش کو مواظه ہوشوں مرحوم شیخ خصوصیان این تقریح ما چون ایشون مراجعه داشتن ڈاکٹر مغارد این تعبیر رو در مبسوط آوردن بعد شیخ خصوصیان چون احترام بابا رو همین جو شیخ بابا شیخ صاحب پس بعضی از دوستان دوستانم در مرحوم آقای خراسانہ بود کی بودال اسمش چه داشت از مرموم استاد و من خود مدین شیخ هستیم از مرموم استاد اون از سای خوبی نمیبرونه اگر ما مدهب شیع روی مدهب شیخ توسی و این ایسا هستیم یعنی واقعا الان ما در عمده ما آرف دینی خودون مدین شیخ هستیم در تفسیر، در حدیث، در رجال در فقه، فقه تفریعی، فقه خلاف فقه محصول اصافت مدین شیخ نمیشه این کار کرد در رجال در خهرست ما در عمده معارف دینی که الان تو اوزه ما تدریس میشه مرحوم شیخ در تمام اینها تقریبا نوشته داره در معظم اینها تفسیر ایشان کلام هم که دارن ایشون یعنی انصافن مند بزرگار و موثل یه خود مرحوم شیخ این مقلب رو بعد یواش هستی که دوهای معامل اون هم که به معاوضه رو میخواییم معاوضاتون اون شیخ معاوضه احتیاط که ده کلبش کردن بشی اضافه کرد. این نقطه فرنیش این تغییر که نیستیم گفتم هم رجال و نحن رجال این که ما محلوه شهر یا دیگران که نیستیم نقطه اینه دبینید شما توی حقود نکاح چی رو نشاق میکنید چی رو ایجاد میکنید امور اعتباری چون واقعی نیستن چون لحاظی هستن و ابداء نفسه تمام ماها میتونیم امور ادراف بکنید این مشکل نداره چون ما داریم اردام می کنیم قانون داره اردام میکنه. کنه نیست که از ار... افق نفت ما خارج باشه و لذا این مسئله مهمه که بگیم از این کلمه زدوشتو که نفسی به مهر نقدار و او کذا ما آقضه می طبعا در این دوی مسائل یکی ما چی می که یکی از مجموعه روایات چاره مقدس چه برمیده طبعا سهم ما یک مطلب لاکه اساس و برگرده بشاره و تفصیلی که از قرآن و از سنه به ساعت میشه من عرض کردم در باب نکاح ما با مجموعه شوارد میفهمم اون چه که ایجاد میکنیم زوجیت اعتباریست نه معاوضه و این اثر داره این که لحاظ شده اون اتقال میکنیم چون اگر زوجیت شد دیگه من رفت نهرد نیشه من که ما داریم در عقل نکاح اون زوجیت اعتباری رو ایجاد میکنیم زوجیت اعتباری ایقایی انشایی رو تو لعا اعتبار ایجاد میکنیم افضایش میکنیم روچن؟ این چالا سالا تو بحث به نکاح نسبتاً روشنه تو بحث به بر مشکل داره با اینکه به درزدگی ما باقر میشه مثلا ما وقتی گفتیم بهت تو کلی به معت تومان چه کتاب رو به هزار تومان فروختن چه میکنه مثلا برد اینجور تفسیر کردن ما اعتبار که میکنیم تبدیل مالکینه. اینه گفتن نه که مشهورم هم همینطوره اونی که اعتبار میکنیم مبادله و مالکه و باز خیلی مساعده پیچی جایی داره آره تو دو نفرم بلر عرض مثلا عرض دو نفر میخواد یک نفر میخواد چی یه نفر کافی باشه هر به ضمن همیشه خصوصی میشه ما ان شاءالله عرض میکنیم که عرض واش این بحث اینه که چون این کاری که اینا انجام میدن یکیه میگیدون بحث بعداً تا در این زمینه عرض میکن. مثلا وقتی میگه کتاب رو گفتن به اهداد کنه هر کدوم یک کار انجام میدن تملیک و تملک کتاب مال من. هزاسما مال شماست. من به هزاسما شما که سلطه ندارم که به خودم سلطه دارم کتاب خودم رو تندیج میکنم هزاسما شما رو تمالده میکنم شما هم عکس این کار انجام شما هم این کار انجام میدی. هزاسما خودشون رو تندیج میکنی کتاب من رو تمالده میکنی انشالله این رو خواهیی یعنی باید این رو ایکی که حساب کرد اعتبارات قانونی و توی اعتبارات شخصی اونا گویو سوسیال چه اثر کردن در درس گذشته اعتبارم به اعتبار خام یا اعتبار شخصی تمام عقود و شروط و نزور و عهود و تمام این تمام اینا رو اعتبار شخصی اند درک کردید این دو تا مسئله دیگه اینه که در باب اعتباریات اعتبار به نظر ابرازه یعنی شما واقع در نظر نمیگیرید اون چه شده در نظر میگیرید اگه شما اگه این یه دوای خریدین که به بچتون بچهتون بسیت بچه‌ مریض بچه‌تون مریض باو خوب بشه شما این دوا و خریدن به اذان خوب دقت بکنید یعنی دیگه منزه بینید که این بچه خودش خوب شده من دوا این شدم میبینید آقا من بچه اگه بچه‌م خوبه خوب شده میگم من شدم میگه دوا رو خریدی میگه تو حال باب کردم تو واقعه مسئولیت بدن تاثیر نداره اگر اقرار کرد گفت این دبا رو میخرن به شرطی که به درد وقت کم بخوره اونجا اثر داره اگر ابراز کرد اثر داره اگر ابراز نکرد اثر نداره اون به خطر ابرازم بکنه در... نه شرطه در... نه در شرط کرده یعنی من شرط بکنم تا اول فرست کنم تخلط دایی در معاملات هست بلزا از خندید این لها اعمال به نیا این تو باب عبادات تاثیر داره اما توی باب معاملات حالا به معنی چون معاملات چند تا معنی داره معنی عام و معنی خاص توی معاملات در هر معنی در نظر بگیریم، نیات تاثیر نداره این واقع این یک نکته بسیار مهمیه توی معاملات به مقدار مذهب به انشاء نگاه بکنید نه به واقعه اون مثبه این شاعشون رو چقدره این بس در اینجا اینجور مکرح میکنی این بسی بس و اصول که میاد یه وقتی گفت سله این امره با عنوان صلاح یا از اونوان صلاح صلاحیت بکنه به صلاح خارجی ببینید؟ واقعه اگر ر انان عنوان سلام با قصد جمع میشه مشکل نداره اگر او خارج خارج نمیشه چون نمی اینین عمل خارج هم مهمون بردن برزن و بشه اونجا اونجور مطرح کردن ایج اینجور مطرح میکنن. پس نکته اساسی شما در باز معاملا صحت و صن معامله رو تابع چی بدونید تابعع مرکشار مخر اینشار معامله از اكن ما بازيد نکتهیی به تشخیص ترتیب انشاء یکم مشكله حالا من اباظی شی که دو بار به دوخم ت توضیح بدن ببین شی این طور میگه ولو وازن على ردیجنسهی مثلا گفت این ده کیلو گندم به ده کیلو گندم شما فقط شو تیار تصص ما احد اما فقط شو تصص فی که ترید خوندن اما, اما ما توفیش از وازه تر شه چه اینجرا سه صورتشون کرده این سه صورتیشون بحثت به محضر به انشاءه فه انجر از المعابضت ها وزن معلوم کلی محضر معامله ده کیلو گندم به ده کیلو فید فعال موضوع خارجیش راقه شش کیلوز عنوان و محضر به انشاء ده کیلوز فید فعال موضوع نه الانهو به داره کرده یک وجه هم نیشه یک سر خونده اشتغل از زمت دو چی رو بده درسته اینجا معامل درسته نقطه درستیش مثل به مشکل ندار دفعی رو به این واقع خالی تخلیف شده کرده این تخلیف واقع خالی سرزیر نداره جبانش داره مشکل نداره مثل من خوندم درسته برای این نقطه و این جرس معاوضه مراد از معاوضه هم مثل به الان موزون معین مثلا گفت این گندوم رو فروخت به ده کیلو گندوم شما به اعتقاد مشتری انه بذال کل وزن صحت ده معامله ببینید نکته شخصی شد شیخ محقق این طارiqi تصریح عادت که در باب اعتبارات مهم مخد اعتباره در باب دل مهم مخد به انشاء نه بابه. وقتی گفت این گندوم این مخد به انشاء کلی نیست این گندم رو رو چند این گندم واقعا به رو واقع باز با جفران رنگ میشه نه چرا اینو فیلم چرا شو شیخ به اعتقاد مشتری نکنه چرا شیخ مردم نه اینه بلا نه بله نه باید. نه جی اینا آ این تو مالای مراد ایشون بگه که اعلام بایع نباشه اگر اعلام بایع باشه این میشه همون ساتی سقم هم. می‌خواد نه این رو در اعلام بایع قرار نده ظاهرا مراد شیخ ظاهرا شیخ از مسائک ظاهرا مراد شیخ مشتری و در مقابل اعلامون بایع امور یعنی اگر بالیه گفت این گندم رو به تو فروختن به ده کیلو که کی این گندم هم در چیدو اگر اعلام بالیه شد این میشه مصطب به اینشاق این همون صورت سبومه که جمع دارید هر دو بکنه اما اگر به اقعاد مشتری باشیم بخواهد از مصطب به اینشاق خارجش بکنه اینجا ذرافت کار حالا اگر اینجا فکر بکنی سوال آیا اعلام بایه دائما اون رو از قبیل قسم سوم قرار میده انصاف قضیه یه خیفت میکنم این کلامشه خیلی در رو یعنی اگر اینجور گفته کنید این گندم رو به فروختن که این گندم ده چیلوست به ده کیلو گندم شما ظاهر تعبیر و عرفی که اینشا همین که گفت این گندم رو فروختن اینشا تمام شد زرافت نفته بفت اینجا با فکر بکنید اینکه تقریبی نباشه من به میاد، همین که گفت این گندم رو فروختم انشا تمام و مسئل به انشا هم تمام شد این گندم این کلام دوبون این یک مسئله علمه علم در مسئل به انشا تاثیر نداره این اعلام باید یک مسئله اخباریه مسئله اخباری جنده حکایت از خارج دارم شبیه همون امور متأصله ای که عرض کردین این اثر رفع مطلب به انشاء نداره شیخ تصور فرمودن که اگر اعلام البایع بود این اعلام بایع او رو در مطلب انشاء در میده تقلیداً تصدیق نفرمید شیخ بکنید اگر گفت این گندم را فروختم که این گندوم ده کیروز دقیق کنیدیم به ده, ده کیروز گندوم شما اصطلاح دیدن من خیلی میتوان شیخ ملادشین باشه ببینم بنده رو نروی شیخ برسن شد اگر اعلام آمد مجرد اعلام کافی نیست برای اینکه اون رو اون به اصطلاح اون که اخبار کرده اون رو بکشه تو مثب به انشاء اون رو تو مثب به انشاء نمیکشه. مثبه انشاء به مجرد انشاء تمام میشه وقتی گفت این گندم رو فروختن تمام اعلام یک امر توی انشاء و مثبه انشاء تأثیر نداره این نمیشه بله اگر گفت این گندم که در چیدوست فروختن این صورت شبه بمهنه او کنید اعلام البایه رو دائما اعلام البا... مراد ما از اعلام الباید اینه که اینشا مفرد بهش واضح باشه بعد باید خبر بده که این مفرد اینه من فکر کنم در جایی که اینشا تمام بشه و باید فقط کارش اعلام باشه اینجا انصافش اینکه که ورودش در این چیزی که اعلام ملهقش می‌کنه به مفعول عینشاض به نظر من اینش اشتباهه این اش مرتبه مروونش به نظر من واضح نمی اگر فاصله دیانداده درست اگه فاصله نندازه اگر اینجوری گفت با... حالا اون فاصله صورت سومه اگر اینجوری گفت این, با... این گندم که ده کیلو خوب ده گندم این گندمی که ده کیلو گفتم این خب صورت چون شنحان کرده ببین عنوان ده کیلو و این واقعه گندم این جامعه به عنوانه این کرده اما این اعلام نیست مراد از اعلام این است که مقصد نشا تمام میشه بعد اعلام بکنه اگر این جور گفت این گندم رو فروختن چه ده کیلو من ذهنم این طور میاد ذهنم حریصا با گفتن این گندم رو فروختن، معامله تموم شد انشاء تمام شد مقصد بنشا اون پایگاههای معین شد مقصد بنشا این, این گندم اون یک کار دومی است که باید انجام بده اون عمل دوبانبایی نمیاد مصحب به اینشا رو عرض بکنه. الباقی لایم قلعه با همه ها و علی. همه وقعه علی. رفعه مصحب به این گندون. بلکه بالاتر ممکن است از آن شما خرشی رو کنید. یکی درستان مصحب به اینشا همونیست که اقتدار کلامه. حتی اگر اینجور گفت این, این گندون که ده چی روز پروخته بازم مصحب به این گندون. این ظاهر مدار مراد باشه یعنی مراد شخصی یک بحثه بحث دست ما فحن و عرفی و نوینیه حالا باید الان اجمال بده یعنی <تصح> خوب اگر اجمال شما معامله باطله چون کلام باز خرید باشه اون بحث دیگریه برمیگرده به مواصات اون بحث دیگریه مثلا انقاض ضرر خوب البته ممکنه اساس شما بگین نه ما بالاتر از این میگیم این خودتون فکر بگین الان چه که بازه چون مرحوم و دیگران یه بستو نکردن شما اصلا اونکه است این ما اگر گفت این گمدون که دهت کلوس روختن مستبده همون این گمدون است خب همه من دارم از که من دارم و تحقیل کنم، شما برانو بردیر استظهار کنید. ببینیم دقت بکنید. ها یعنی ارد مستبده اینشاه رو مجموع میدیم اما در اعلان کردن این این که در زمان های اینو ارزی دادونیم این طوره که باشه اگر گفت این گندم رو فروختن ببینید این گندم رو فروختن که 10 و ما بعد از در تمام این مختصرا بعد فرق یعنی الان در این زمان معلومن اینو ما کمتر معامله میشه معلومه کار مثلا میدونن ما فرض اینکه میشه دیگه گندم خارجی رو فروختن که 10 کیلوس به گندم شما این بحثتر اینه که آیا این فاسده یا نیست؟ فاسد شیخ از شیخ معلوم میشه که این متوقع است و امکر آینده روشنگ این دادیه به اعتقاد مشتری که معلوم شیخ برمودن و روی مسئله آقای صرف کنند که اشان الله یک نتیجه واضح است. صورت سرون به ذهنم من که مثل بینشاه عوض نمیشه مثل بینشاه با گفتن فروختن تموم شد یه اعلام دیگه دیگری دیگه شیخ این نکته ارتباط مشترز اضافه داره که هر جا اگر اعلام البایه باشه اعلام البایه مذهب انشاء رو محدود میکنه عوض میکنه به نظر من یعنی هر دو اعلام و خود اون اولی هر دو می‌کنه مذهب انشاء من فکر نمیکنم این مذهب انشاء علاج بشه با اعلام البایه ولو جرت علی در معاوضه بر این وزن مؤید اون جهت روشن شد دیگه معلوم میشه که معلوم میشه قابل است که ما در معاملات یک شخصی همونی که مذهب همونی که ابراز شده دارمدار رو بردید اگر گفت این گندم 9000 ده کیلو اگه بگه به میاد دادمون شده کیلو باشه این ربات باطله و هم اگر گفت 10 کیلو گندم بعد این گندم بودات اینجا درست حسابه قاضی راش این اندازه معامله در اندازه معاملاتم این میشه فرصیت، فرصیت. یعنی یه چون تعبدی میگن یه است که اگر در در عقد بسازه باش عجل ذکر داره میشه اون مراد نیست اون قابل قبول نیستند حتی از بزرگان متفقه مثل شیخ غالب خویی مثلا ایشون قبول نکرده ما هم قبول نکردیم اگر عجل ذکر نشه باطل است می ولی اون قرت علیه الا انه یعنی از قدما ما قبول دارن چرا اما انصافا اثباتش با دووارت مشکل اینی که شاهه من ندیدم در کسی که دوشر به خاطر نفسه، و قوای مشکله. اصلا بهشون بدون اجاز نمیگه. خب چطور بتونه اجاز نکرده بدون اجازو؟ اگر موقع کرده مثلا به انسانیت. این دو تا باید مقدار هم باشن. و لوجهت علی انه ببینید این, این گندمی که در کی روز این, کیلو گندوم این کیلو گندوم رو ده کیلوگرم دوم کجا این ده کیلوگرم دوم رو فروشن. سه تا لر بین لر و لر مشاوره لی، انوان وواقع. هم انوان کیلو ده به کار برد. معمولا اعلان رو هم جزء هم میدونه اعلام اعلان صرفا با این پریشان به نظر ما فرم می‌کنه. لم یاب ادسته. اینشون فرم می‌دن در این صورت هم باید نیت. ظاهر و چه اینه که اوه در اینجور موارد بیشتر کابه عنوانه یعنی به عبارت دیگر این واقع خارجی رو به عنوان مثل داعی قرار دازه و اندام مصد به انشا رو در کیلوه لذا اصدام انشا این که لم یعباده سهه اندام به لحاظ این که رو عنوان در حالا این نظر اولیشون ویمکن ابتناعه علا ان لاشتراط مقدار مع تخلفه این تخلف مقدار قسم تنل عوض ان لا همانل اول که تست یسه دون از بنابر دهم بایسه کمی عبارت شیطون یوم چه غمزن کمی ابهام داره ابتدا یک مقدار من توضیح بده در توضیح خارجی و داخلی <تصدق> تا ان شاء الله روشن بشه ما قبل خب از این که بحث بشیم در همین تصمه بحث امور اعتباری نکاس ذریفی دیگر در امور اعتباری هست یکی از این نکاسه امور اعتباری اینه ادراکات اعتباری اگر ما یه چیزی رو اعتبار کردیم اگر کنیم اما واقع اون چیز متعدده آیا در ظرف اعتبار هم تعدد پیدا می این بحث لطیفیه این خواهیم که خیال کنم من یه چی دوگاه علیه باشه نیست این هم تو بحث اعتباریات ها کلا فکر بشه این ما هم تو اعتبارات قانونی این داریم هم تو اعتبارات شخصی این بحث داریم بحث لکیفیست روش فکر بکنیم نتیجیگی بکنیم در اعتبارات قانونی همون بحث معروف این که آیا حکم اجزا و شرایط آیا مثلا منحل انحلال انحلالی که میتونه تکلیف بعضی اجزا و شرائط. آیا وجوب اجزا و شروط وجوب خود کل وجوب نفسی یا یک نهی دیگر از وجوده و یا امره به کل منحل به اجزا و شروط میشونه مثلا گفت عقلم صلاح و صلاح ده جزءه آیا این امر عقلم صلاح منحل به ده جزء میشه یعنی عقلم صلاح یعنی یه علاوه چه یا دواری که سوره یا دواری که رکوع یا دواری که سجود یک دواری جوالیت... هم امر منحل میشه و مراد از انحلال انحلال اعتباری یعنی چی یعنی همون که اعتبار تعلق گرفته به کل نماز همون اعتبارا تعلق گرفته به کل واحد من اجزا. این کل واحد من اجزا اجزاء صلات هستند اما تو مقام ابراز ابراز نشدن. مشکل اینه. تو مقام ابراز گفت یاد اقل مثلا گوزه کرد تو مقام ابراز اون کل ابراز شد. اما تو لبه واقع این کل اجزاه. نحنی امر اجزا چه را از کرد اون آرار متنبه وجود داره شاید مشکول گفتن امر اجزا مقدمی مشکول کرش این باشه. <تصفيق> و چون با بحث مقدمه واجب ترزین اشتباه بشه اسم روشن مقدمات داخلیه مثلا توی هدابای که پایین ها ملاحظه گفتن مقدمات دو جوره مثل تهارن مقدمات خارجیه مثل رکوع اصجود مقدمات داخلیه و نظام وجوب وجود ها وجوب از زاله وجوب مقدمیست مرحوم آزیا اشد نظریال اینه مرحوم آزیا وجود نفسی اینی میدونه اینه اینه اینه کنی امری که به اجزا خورده اینه که به کل خورده به اینه منحل به اجزا میشه ایده ایم امر نفسی زمنی میدونن ایشون نفسی اینی ایده ایم امر ای تحییوی میدونن نفسی دیگه نمخواب باید ما در اونجا از کردیم صحیح در مقام اونه که یهچ از اینا قابل تست یعنی اعتبار در مقام امور اعتباری که از نقاط هست همینه. که گفتم به این بحث امور اعتباری تو اضافه بشه انصاف رضییه اینی که چون در امور اعتباری مقدار ابراز حساب میشه مقدار ابراز تلاته تعدیه و اجزاق تلاته لاته اگر قائل به انحلال بشی یک نوع انحلال مجازی قائلی مثل جرال ما و جرال میزابه مثل که آدمی که تو ماشین نشسته میگیم داره حرکت میکنه ماشین حرکت میکنه نشسته اگر اگر بخوایم بگیم انهد انحب... اصلا نداره اگر بگیم اجزا وجود داره وجود مجازیه یعنی چی یعنی وجود قانونی نیست دقت کنید وجود قانونی به کل خورده باشه اعتبار رو نمی‌خوره اونم که یاد اعتبارش تعلق میگیره و آثار داره به کل خورده این اجزا یک نوع به اصطلاح وجوب عددی وجوب مجازی بهشون تعلق پیدا میکنه عرضی مجازن بشه این باشه آثار قانونی نداره آثار قانونی فقط مال کلده و اگر از این عرضایی پیش هم متعذر شد بقیه واجه نیست افیانش امدر جدید میخواد چون رفتو در کل کل که الان متعذره نهجز این که کافی باشه دلیل میخواد اگر دلیل نباشه ما نقطه نداره که نهجور رو انجام بدیم. ساخت میشه و از رزار دل خارجی اقام بشه این یک مثال در اعتبارات فانومی در اعتبارات شخصی شما بود خانه را فروختن به ده میلون هم. خب این خانه از آهن و آجور رو نمیده و سیم برق و, و لامپ آیا این ده میلیون تومن به و اجزاق خانه منحل میشه؟ خانه را پروختن به ده دقام تومن؟ یعنی <تص> مثلا ست تومن اشمال محتوی نیازن دونهی قدابیستان پول آجور بکرن آجورش مستحمره مثلا شهست تومن این ده میلیون تومن به و اجزاق منزل این منحل میشه این در حقیقت چندین به ایجار کرده و در فتیجه اگر خرص که در حالی یا نمی تو هم یه قصبتش نبود اونو باید جبران بکنم معامل درست داره باید جبران بکنم رو الان کارشناسی باید ببینید کارشناسی یعنی این مجموع این قیمت رو میاده این درست این مقام حکایته مقام انشاقه اعتبار انشایی تو انشاق کار بکنم من سوال اینه وقتی گفت این خونه رو فروختن تو اینشا حساب بکنید. از قانونیشه. اگه همین خونه رو یعنی وقتی گفت در میلیون تو فروختن، درعرش اینه که کل اجدار به این قیمت. خلافه. حالا اجازه بدین من این مسئله اجازه بدین من مسئله بکنم. اون وقت در مثل به سه چیز رو در نظر گرفتن. خوب دقت بکنید. یک اجزاء مدی دو اوصاف مبی سه کراه شروطه دو ده یک عقیزا دو شروط سه اوتا مثلا اگه گفتیم کتاب رو به تو می توشن به شرطی که برای من یک نامه بنویزی پس این کتاب دیمان داشت هزار تونه این آمام که یک نامه سی دیویست تونه. این به خاطر که یک نامه سی کتاب دیمان کتاب رو بسروختم هشتت تومن به شرطی که در من یک نام بینید که در طرف نامه ننوش سوال میکنه لگی این درسته تو دیدیستوان به من برگیم یعنی به عبارت اخراب خود قیمت داره خود کنیم خود این چه قیمت داره درسته آیا وجودی این قیمت برای شمت و برای این شیف تأثیر روی سمن میگذاری آنه قیمت کتاب هزا سمن قیمت نام نوشتن دویست سمن سمن این کتاب الان در این معامله هستت سمن بگیم همچنان که بین خود شرطی مداره این قیمت یا تأثیر میذاره تو معامله یه یعنی اون انحلال که گفتیم ما در مثل عبادات انحلال رو به اجزا گفتیم اما توی به خوب دقیق کنیم یعنی انحلال رو به اجزا گفتم به شروط گفتم به اوصاف هم گفتیم خوب دقیق کنیم مثلا من این عقل و جد رو گفتم این مثلا در ساعتی این سنه بیس تیمش بود و تحصیل بین بی مقدار حالا در بازار عضی که مثلا عادی میره قیمتش 10000 تومان باشه عضی که مثلا 20000 در قیمتش مثلا من اینو پشتو عرفا بین قیمت بعد از معامله ما این حال میتونه بیادش کنه این بحث وجود نداره آیا میتونه ما تفاوت ما بین قیمت رو بگیره تخلف رخ شده نقطه فنی رو شد نقطه فنی اینه که اون مقدار از ثمنه این که در معاوضه واضح میشه آیا به حسب اجزا به حسب اوتا به حسب شروط تقصید میشه یا تقصید نمیشه بنایه علما این است که به حسب شروط تقصید نمیشه به حسب اوتا تقصید نمیشه الا وصفسته اسم اون وصفسته هم اینکه یعنی اگر شما کتاب رو خریدی، با اون اصطاب سریع باشه بعد نعید در به مقدار تفاوت مابه نسری و مهی رو حق داری میدید. اما اگر عرض و فروختی هم برای کسر کهیون اصلا دیست فیلمت بده و در نعمد دیگه شما که به طرف یا بیا به تفاوت قیمت رو به من بده و این معامله لازمه میگه نمیخوای تخلط ورست شده معامله رو باطل کن خوب دقت ک تکاللوش شرک شده نمیخواد مامن رو باتوجه فرض کنم کن. نمیتونی ما به تفاوت بین وجود شرط و عدم شرط دوگینی روشن شد روشن شد مطلب حدیث این یک بحث کبری و کویس که فوق العاده نافره راجع به عدزات تخصیص و قبول دارن راجع به اوصاف و اشراره قبول ندارن امله خصوص لغزه سه نصف به لغزه میشه. شیخ انصاری مسئله ما نفیه رو به اون مسئله ارجا میده لیکن در شروط ما نفیه رو نصلاق مسئله شرط قرار میده چون وقتی میگه این گندم که ده کیروز این میگه این گندم که ده کیروز تنها شرطش کرده اگر گفتی به حسب شر، تقسیف میشه درسته؟ به حسن به شهر تقسید نینجه دوست نین این عبارتی شکل هر درست رو دیر این چه و صلی علیه و